الله و و اللهم که بحث از نواجه بود که اخباری ما در دهم، از یک جهت برای قبول روایات کتب سابقین و از یک جهت برای اینکه این تقسیم بردی علامه درسان سر و اساس نداره مطلبی رو که علامه در تقسیم حدیث فرموده بودن این قابل اعتماد نیست یه منظر عبارات رو از کتاب خود وسائل چون دیو خود اصرازن به این مطلب کنیم و تحکید تق... تق... تق... تق... تق... تق... تق... تق... بکنیم و مطالب خودشون از طریق خودشون در این جد آخر بساطر که به نام خاتمه معروف در این شاپ جلید سیوم در شاپ قدید بیستوم ایشون از مظموم شیخ بحالی که هم همون زمان سفریه و قرن یازده همه در اومی آرزان در اونجا قراهنی رو ذهر کردن چون این مطلب که اصحاب قراهنی داشتن شواهی داشتن این زیاد توی علسن تکراخده اون چه که مهمه تشریف و تدهیر در این شواهده یعنی در این ها رو بگم بکن خب یکی از شواهدهشون همون اصول که موجود رو مطلب رو دیروز خوندیم این روز هم تکرار رو نبود جهدیم فی اصل معروف الانتصاب الى احد الجماعة الذين اجمعوا على تصديقهم تصدیقه که و محمد مسلم و بن ابن اصاب و علا تصدیق مایسه كصفوان بن که ويونس ابن یحیاب و یونوس ابن و احمد این اول امر در روایاته که عمار ثوابت این تعبیر لطیفی است که مرحوم شیخ بهائی به کار برده یعنی اجماع رو الجماعه الذين اجمعوا اجماع رو دو, دو تعبیر کرده نه یکی من یه توضیح اجمال عرض بکنم که دقت عبارت مرحوم شیخ هم روشن بشه در کتاب کشی موجود ترخیص کتاب کشی اصله سه تا مطلب در آمده به عنوان با این روزی و اصحابه اجماع و از است که مرحوم شیخ که این کتاب رو نوشته دقیق این کتاب رو, این, کتاب رو این کتاب رو از کتاب کشی اصل ترخیص کردن دقیقا به اصطلاق باقال مرد قبل و بعدش رو نداره نمی‌دونیم، حالا چی بوده قبلشه عنوانش بسن تصمیه تو الفقه ها من اصحاب عبی عبدالله و عبی جرح سه تا عنوان داره از کنم یه قبل از این که وارد این برس کشی زیاد است که ما اشتاد اکلال از کتاب خود کشی از مبورد بوده به حساب احمد علیه موسیم ظاهرن خود از مثلا اصحاب الباقر اصحاب سجاد اصحاب این کشی که ما الان این موجود عنوان نداره لیکن تقریبا به استثناء یک قسمتی از کتاب واقع هست اما عنوان نداره یعنی انسان هست میکنه این از خواب امیر بعد از خواب حضر بعد از خواب واقع احساس میکنه وقتی که آورده طبقه احساس میشه به استثناء یه بردی به هم دیفته. به استثناء یه بردی که به هم دیخته قلن اهل شما میشه نسبی کشی خودشو بدونید که اصحاب عمرونی در اصحاب کذا میشه اصلا یه جاییش خرابی داده یه خودشو خراب کرده به دستور خرابی میشه ایشون در اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله یک تعبیر اجماع بردار یکم در اصحاب علی حسن موسی بعد از نظر واقعا اصلا اصحاب نیست تو کتاب مثل کتاب خود رجال که اصحاب یاران رجال بحثی باب اصحاب علی عبدالله این رجل باب نشده که اما در کشی موجود باب نشده نمیدونم ده. این برام سرشنویی شوشه کنم که اولی تو کاشی اول نبوده. اونا شم میگیری پیش. چون نسخه وانر اصلیه دیگه نمیتونی تونیشی دیگه. لذا شم در سه جا عنوان میشن باب تسمیت الفقها من اصحاب علی عبدالله و علی عبدالله اولی هسته. با عنوان تسمیت الفقها عنوان باب اینه. آن ذرا اجماع اصابه علی ان اولا و قبولهم به ف این سه تا مطلبی رو که ایشون فرمودین بعد ها مشهور در اسامه شما بعد ها هم یعنی به اصطلاح تقریبا از زبان عبارات المحقق قدس الله نفسه و سید اول تقریبا میشوه او قرن 70 از قرن از اصحاب ما رو این عبارات مانوری میزدن که این اعاب اجاع چقدر ارزشته که حالا وقتش بشن و تاابقه هم هم کردیم این تعبیر که حدود 6 تا 6 تا بعد 6 تا بح تا 6 تا دو تاش محل خلاف و قال برون مکان کلان مکان کلان مجموع ۲ 21 تا ۲ نفره کل اعاب اجاییهایی که در این سه مورد آمده با به سلام محمللاتشه حدود بسیه که بسیه هم داریم نیست نفر از شیخ خودش در کتاب بایی دیگرش اصلا فرسون در کتاب اشعار یا فهرست هیچ اشعاری به این عنوان نداره مثلا خواهر من از حال اشماع یه اشعار که به این عنوان نداره اصلا این عنوان هیچ اشعاری در کتاب نیسته اما از کلمه برمه هفته هم یا شوهاش مح... و یعنی شما خب بحث شد که این از خواب یعنی چی خبرشون و حجزت مصانی یه عبارتی در حبته داره یه یک مناسبتی این که اگر تا طبعا معارض باشه نگاه میکنیم بیش مرسل باشه بیش مصنب اگر مرسلش کسانی باشن امثال ابن عبی عمر و صحوان و زندتی و غیرهن کلمه غیرهن داره که بعضی احتمال این کلمه غیره هم این از خواب شما این هم تو قده شهر هست و غیره هم از وسه لفظه اشماع بکنی ممنوع رفو و ام نه هم لا یورگون و لا یورسلون الا انسره احتمال در این غیره هم ممنوع رفو این از خواب شما تو عبارت قده شهر و واضح هم هست که دلاتی بکن با از خواب شما. به استثنائی این ایوارت ما چیزی در میراس خودمون به اصحابه اجماع نداریم را دیرونتون را به اصول عربنه صحبت کردن؟ اموزم را به این کلمه از زمان محقق به قرن هفتم چرا؟ این آواشواش مطرح شد؟ خب ازوار هم زیاد شد مراد اصحابه اجماع چیه کسیه مایسه یعنی چیه؟ خب بحثت من نمی خواهد بحثش بشن یه نکته ای را عرض بکنم ظاهر اضعی زیادی از علماء این سه عبارت رو یک رو گرفته این نقطه فندیشین بعضی ها آمدن گفتن نه در یه موردش گفته موردش گفته اجمعته اصابه علا تصدیح حسیح مایته و قبول همون بفته در یه موردش گفته اجمعته علا تصدیح و تصدیحه هم. یعنی به عبارت دیگه دویگاه بنده کمیشه عرض می کنم 10 تا احتمال در این معنی اصحابه ما هست که اصطلاحاً من اسم کنم احتمالات خوهادی که مناد از اصحابه جوان این یه چند تا احتمال هم هست سناییه خوهادی نیست اون سنایی یا معناش اینه گفتن اونجایی که مربون شه اتیانه رو کشی گفته تصریح مایسته اگه یک اون معنی داره اونجایی که گفته تصریحه معنی داره داره اونجا اتفرموشی مقدم الحان معروف و معروفه اولا اون چیزی که قبول نکردن که قبول کردن معروفش اصلا تازه هم نیست ایشون دو قرن بیشتره سه قرن غلط عبارات به شیخ بهایی بهای مولف خارجان نداره از علمای ما کل سه عبارت رو به یک معنا گرفتن که اصطلاحاً من همچنان احتمالات او یک معنا برش گرفتن ایده ایشون دو تا معنا گرفتن چرا چون تو کشی در یکی داشت تصدیحه یکی داشت تصدیحه بخشن شد بخشن اونجایی که تصدیحه لیر از اونجایی که تصدیحه من جلده از اونها اینه عبادت شیخ بهایی دقتی نیشه شیخ بهایی دقیقه نظر و من ها وجود رو یه اصل معروف الانتصال لا احد الجماع الذین اجمعو على تصدیحه این یکی گرفته او علا تصدیح مایته انا چقدر که با ما بزرگواری شخص رو به همین دقتهاش می‌شناسیم از اون زمان ادله بین احتمال که این اساوهای ما دو بار دو ارزش داره اونایی که تصریح مایسته یکی رو یک جور معنا بکنیم اونجایی که داره که الا تصدیق هم اونجا رو جور دیگه معنا بکنیم این عبارات شیخ بهائی است اش... اشعار این من گفتم توضیح خارجی بدم این عبارت شهر اشاره است به این که این سه مطلبی که در کتاب کشی آمده ارز کندم الان متعارق نیاب اصحاب اجوان مراد را که چیه؟ غالبا یکی میگیرن رکم معلوم شهر زباهایی یکی یه وانوان عجمع و علا تصدیقه اما فکر می‌کنم اون عجمع را تصدیقه زراره نیست اون عجمع علا تصدیق مایسته زراره است تا دیگه من مراجعه نکنم یکیش روش تفسیر زالیش بیشتر نداره. حالا یکی به نظر تفسیر اون دو تاش داره به نظر من از الان دقیقم تو ذهنم میدونم که این اختلاف هست و عبارات اما الان دقیقا تو ذهن نیست به هر حال فقط اون چی که میمونه در اینجا که من دیروزم اشاره کردم و لذات این مطلب رو من الان عرض می‌کنم به احتمال احتمال میدم بعضی اونطلا من که مراجعه نکردم یعنی مراجعاتی که داشتن نایدم اما احتمال میدم شد بعضی برمار و یک چیز جدیدی که رو این نزمان ارض چون ارض کردم مثلا زراره و محمد بن مسلم و فوزهید بن یسان در کتب ما بینها اینها ارض نسبت داده نشده دیروز ارض کردم داله یکی نوشته اصل معروف انتصار. حالا مشکلتر از اون که این اصل مسلم نسبتش مثلا به زراره اصولا یک کتاب در جبر و اونم نسبت داده شده قطعی نیست در جوشی گفته شیخ مختل به مصنفات تعبیر شیخ مصنفاته من ها کتاب الاستصاره وقت طریق شیخ ابولزه من فقط اشاره ای اجمالی کردم طریق شیخ از فهرست ابن برتقال من از کردم آنچنان که اسامی رو بررسی می‌کنی اجازه هم ما بررسی می‌کنی این عبارت شهر پلم و مصنفان و یکیش شن این از طریق فهرز زنده بوته که از, از فازل و از علمای خوب بود اما نجوشی یا فیر فهرز ما رو ها قلط اونقدر نمی کنند شهرز چون قلط درست هم میگین این و قلط این مطلع که که مصنفات داره غلط قلط, قلط بیشتری نقلی که ما الان از فهرز زنده بوته داریم نجاشی نامه شدی کنه این کنایشی با فرست ابن باشه با فرست این یک معامله کرده همه چی اتفاقی که هیچ فایده نداره این ان در یک بحث دیگه توضیحات بیشتر اما نجاشی دوست یه دور معامله در وافرسنده بوده یک جور نداره ان شاء الله در این وقت یه توضیحش هست این که ما حالا این به خودش اونی که در ما خیلی دیشام واقعا برام یه مشکلی بود که مثلا میان میگن اصول ابرمه یا به افراد اصل نسبت میدن اون وقت وقتی به اصلی مراجعه میکنم مثل فهلست نجاشی یا چه فهلست شه چهار, این چهار, این چهار که این چه خیلی کمتر از چهار لذا به ذهنم اون خطور کردن این نسبت بدن احتمال میدن اصل اصلیش اونا فقط این نبوده که کتاب های بزرگان صابر اصل میگفتن اینو ما اشتباه رو احتمال داره هر کتابی رو که اون دست اول بوده یا حالا امام مباشرتن نوشته یا خود مؤلف جمعآوری کرده اشاغیلداری شده امام بوده ظاهرا اسم اصلی بوده احتمال زدم البته چیزی اگر باشه خیلی عجیبه معناش اینه که هر کسی رو که نجاشی مثلا با کتاب، این رو عربی عبد الله باشه اون این کتاب این اصلا اگر این باشه از چهار تا بیشتره یعنی یک احتمالی من دادم چون خیلی عجیبه که شیخ باید میشه وجود روفی حصله هیچ کدوم از این افراد بهشه اصل نسبت نداردن اصلا من بکنم اصلا بله زراغه روایات داره از امام اصلا نوشتار زراغه روشنه ایست محمدال مسلم داره اینچالا چون دیگه راجع به موردی بارد شد اراجعه محمدال مسلم کتاب کتابیشون یک نقاط خاص شده و بده به ذهن راسته که این شده بعد ذراخه خیلی زیادی ازش رو گذاش. گزینه هم تو جور داره اما اصل گفته نشده. ولذا این احتمال دیشب به ذهن خطور کرد که نکنه خیلی واقعا سالهاست چطور اصلا مثلا این مطلب نسبت میده. احتمال دادیم که هر کتابی که از امام مستدرک نوشته بشه اصل گفتن ولو نشه ایشش اصل گفته باشه نگفته. این مطلب رو حالا اگر آوز در خلال این برنامه های کانفیسی غیرشی پیدا کردن من خبر بدن برای از یک احتمالی که الان شواهدی هم در مدرزه بودن که احتمالا کلمه اصل معدود نبوده ظاهر عبارت شیخ در ترجمه حریر در پهرز لبو کتب رو بما توعد فل اصول آدم احساس میکنه که معدود اصول معیم توعد فل اصول به این معنی که الان گفتم خیلی گله میشه خیلی با باز میشه هر کسی که از اصحاب امام باشه کتابی داشته باشه اسمش اصله اگه معنا باشه که ظاهرا احتمال میدن کلمه اصول و صنفات رو لا اهر از متأخرین یعنی بعد از شیخ و بعد از نجاشی به یک معنای آم میگرسته باشند این احتمال میگه تا حالا ذهنمو خطور نمیکرد و الله با عبارات اینها نمی سازه علایه اینم یک مطلب و از تصریح مایسته ها انها هم که توضیحش داده شد صفوان از تو یونس بن حبد الرحمن و مرهوم بزنگی البته اینها همه شون دوزر جلده اصحاب هم بدون شکل را اصحاب اجموع به استثنان یونوس یونوس یه شدیده را داره اما کتابهای اینا رو کسی اصل نگفته هیچ کدوم کتابهای اینا رو مثلاً, مثلا مرمون بزنتی کتاب بنامون جامعه داشته کتاب نام نواده داشته کسی بینا اصلا نگفته اول عمل به روایاته این کتاب احتمال داره که اممار ساباتی کتاب اممار ساباتی یک کتاب نسبتاً کبیری بوده نسبت به خودش روایات از امام صادقه و شواهد ما کاملاً گویاست که این کتاب محور اصلی فتری ها بوده روزی به کتاب اممار صحبت زیاد در آنگیزاش اینجا نیست اجمالا یعنی اگر انسان فقط خود جواهه به نگاه بکنه شاید ده مورد در جواهه برای که اینکه که از اممار میانه میگه خبر اممار المعروب به کسی طب نسبت شدوز در رواهیت اممار ساباتی خیلی بالاست فوق العاده بالاست و یکی از مشکلاتشون خیلی عجیبه مقداری که ایشون مساله میداره که خودش گفته. و آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست و چی کار بکنیم و روایاتی ایشان داره تعدید لفظی هم هست یعنی مقدار مشکلات تعبیری هم داره دیگه حالا من بخوام وارد بحث بشم طولانیه به هر حال دوزه قفعاً بسیار معتبر بوده ولیکن اون که ما الان از امار داریم بیشترش منحرضات شیخ توزیه یعنی بدونه یعنی ما قومه کلنگی هم داره صدوق هم داره اما محدود شده یعنی از کل روایاتی که الان ما از عمار داری محسوب که پیدا بشه شاید نزدیک 80 درصدش منفرذات تو شهر توسیه و ذکر کرده توجیح هم کرده که معارض بوده شاز بوده توضیح کرده توضیح اینها جای دیگری که الان جای چه که طول می و غیرهم ممن و عدّه شیخ فل العده ظاهرا مرادش از ادهم قسمتی باشه که اصحاب ما عمل کردن به روایات غیر امامی جایی که ثقه باشن شو اسم حمار ساداتی اونجا بود کما نقل ابو انه المعخصی بحث تراوح از معتبر راست هر در عده شافعی اده شافعی هستند خب پس معلوم شدی که از قرائنی که مرموم شیخ باهایی داره این مطلب وجود و فی اصل معروف الانتصاب و این معروف شد که کلمات ایشان ادهی از مناقشات رو داره هیچ خودم از این 6-7 نفری که ایشون رو اسم بردن در کتاب روی فهستی ما اصل روناه کتاب نسبت داده بوده هیچ کس نگفته لبو اصل مگر با این معنای مجازی که من رو کردم. کردن مضافن به که یونس معلوم نیست یونس در از اول حسن کازمی و اول اما یونس معذر و به واسطه از امام و صادقه هم همینطور و همین بزنگی هم همینطور بایی به دو واسطه از امام و صادقه اصل به معنا من نیسته اما رساباتی هم هست و کتابش هم معروفه لیکن کرد اینام از که اینا توجه نکرده چیزی حدود هشتا درصد از روایات فقط شیخ اومده نه کلینی اومده و نه مربوم شیخ صدوق البته انفراد روایات معناش این نیست که مثلا خود نکده باطلا باشه همین حدیث قاعده تهارت کلوش این لکه تاهر کلوش این تاهر این یک روایته من تازه کرده ما در بای قاعده یک روایت بیشتر داریم اون هم کلوش این لکه نقید. حتی تعرف انهو قدران. انه قدران فقط قدران. و اگر دونستی این هم فقط منحطه به هم ما پس طبطان فقط شیخ هم امرده در کلگی هم نیست علایم که به ما کار انفراد همیشه به معنای شدوزه به معنای عمل نیست و منها اندراج خب این منهایی که ایشون دارن می فرمانید که ما مناخش ها هم عرض میکنم و منها اندراج انجراجو في احد الكتب التي اوردت على الائمه مسرور الله عليهم فاثنوا على مصنفيها ككتاب عبيد الله بن علي الحلبي بعد كتاب عبيد الله بن علي الحلبي عرض شده بر امام صادق بعد از هر دو اتمام لها الا مثل حزين شنيام نداستان است چون اگه بخوای مشابه کتاب عبيد الله علي حلبي را بشن، میشن که مثلا موطع مالکی جای وایات سنن موطع مالکی معد امام صادق نوشت صدق سادق پنجانش هنوز در اون زمان اهل سنت یک کتاب مرتبی در مسائل حلال و حرام مثل همین کتاب عبید الله و نهلی حلابی نداشتن به کتاب ایشان باز یک توضیحاتی باید از مخونم که جشنان اینجا نیست در حال این کتاب جزبه کتاب بسیار مشهور بوده اصلا کتاب حلابی بشیم گفتن اینقدر مشهور بوده که کتاب الهلوی اندل اصلاح مراد ایشون بوده راجی به خود کتاب و نصف کتاب و متاسفانه بعضی روایت شازده در کتاب هست راجی به اونها باید یک طولانی بشه که اینجا و کتاب یونسل نبدالرحمن و فرزد نشازان البته راجی به کتاب قبید الله الهلوی بعضی به نظرم عبارت این چه قیله این یعنی اگر بخویم خیلی مولا مقتی بشه از از سابق وقتی این موارد مطرح بود علمای حدیث اونا میگن که تمام مطالب دونه دونه سندن بررسی میکردن دون دونه با کسلوس اگر وقتی این مطلب رو بررسی بکنیم اباص نجاشی خودش پیشو نگاه بکنید اوذلار نظری قیله نه عبارتش به عنوان قیله است یعنی قطعی نیز عرض کتاب برای امام صادق ارثونام من میگم اخلو دان که مطالب داره حق ایراد به دیگران به ما اعتراض بکنن خودمون نقطه که میدونیم که ما و خواهر بگیم از این مطلب که کتاب عرضه شده بر امام صادقیشون اینجا یا عرضه این در کتاب من این کتاب ابوالحسن جوشیره قیل انه اورزه علی خیلی قطعی قطعی نیست یعنی مثلا یک سنجه قطعی روشنی که مسلم باشه عرضه کتاب بر امام صادق شده باشه حالا بله این هر این مطلب ها البته راجبی این کتاب هستیم صورت دیگه هست من نمیخواب آدم بخصیم که دو کتاب یونوس نردرحمان چرا کتاب یونوس نردرحمان و لیکن خب میدونید که در اون زمان یونوس در بین قومی ها خیلی محل کلام بوده به شدت با یونوس وقت میکردن خیلی وضع ناجوری بود و این مطلب رو که کتاب یونوسی عرضه شده به امام اسکرین و حضر سامالله و عطاب الله به کل کت... کلمت نور یا کتاب کلام نورن فل جنه این رو مرحوم نجاشی با سنه لرم از کتاب شیخ مفید اون کتاب شیخ مفید فعلا به ما نرسیده جزء آثاری از شیخ مفید احتمالا خود شیخ مفید مثلا یه دستور داده کتاب جمع بشه کتاب شیخ مفید در وقتی که فتواش این بوده که شهرمازان تام منعبد هم که دارا بیده شنوان چون آیین توضیح ندادن ممکن ندفه به رجال فهرس نجاشی برگردیم مرموم این شهر مفید اول قاید که شهرمازان تام منعبد هم بعد برگشته که نه شهرمازان که رفت یادش رو این رساله عددیه که داری از اسنه میشه این مال برگشتن شهرمو فیده دفت میتونه اون کتاب اولی ایشان که اون الان موجود نیست. احتمالاً خود شیخ مفید دسته دادیه استنساهش نکنن. چون از اون مبنا برگرد که از اون مبنا درفعیت کرده. در اون کتاب لنه و برهان شیخ مفید با سند این قصه رو نعبید کنه. از لحاظ مسلر و دقت در مسادر. و کتاب فضل نشازان چرا؟ بسید فضل هم متاسطفانه ادوه بودن در خراسان نشاغ و رزراف. روی توجه حساس بودن و صحبتای کردن و امه علیه علیمون امام عسکری کایی فرمودن حتی, دار حتی عبارتی داره که این عصر به اهل خراسان به مکان من کثیف نخورم به حال مردم و خراسان به خاطر وجود فرق. خب میدونید و من ها اندراجش فی احد کتاب این عنوان روی سنگینه کل موجود است کتابه ستا کتاب کتاب نمیتونه در فرد ما خیلی کارساز باشه. عنوانش سنگینه و البته از سرم کتاب یونوز چه مشکلاتی داشت. توضیحاتی میخواد جاش الان اینجا نیست و این چاله وقت دیگه و منها کونهو معخوضا من الکتب اللتی شاع بین سلطه هم الوسوح و بها و الاعتماد علیها اون کتاب هایی که محل ووسوح بود این دا بگیشون این چا در مقابل اصل آوردن سوا امکان معلکوها من الترقت ناجیت المحقه که کتاب سلات لحریزه ابن عبدالله حریز ابن عبدالله ارز کردم ولو اسم کتاب شفاو سلاته لیکن یعاد دو خلق این هم اجمالا به امام گفته شده اون رو باید حمد و سنده ده. حماد به امام یعنی احواز کتاب حریز سلات و کتب ابن سعید و علی ابن محضی این دو هم از کتب اصحاب جمع کردن ارز کردم یه مقداری در کتاب ما گاهی خلق میشه بین دو آنوان یه توضیحی بعد اعزم کنم من غیر امامیه یا از امامیه نیستن و که این کتاب ها قابل قبول بوده یکیش کتاب هفت سبن قیاس قاضی این کتاب هفت سبن قیاس قاضی چون ایشون معروف بوده شخصیت علمی بوده و حتی وقتی قبول کرده قاضی بشه ادهی زیادی بشه شکار تو با این مقام رو چرا قبول کرده به دست ها روشه قاضی میشه ایشون قاضی میشه در بغداد در بسمت ناهیه معین از بغداد. و یه شخصیت بزرگی علمی ترسون نه با بخاری و دیگر همزش حدیث رو هم جوزه یعنی بزرگان نه علمه شن بزرگان عجلای اهل سنته ایشون یه مجموعه 170 حدیثی از امام سادر نهار کرده کل مجموعه ایشان نجاشی داره؟ من اولا شون خدمت ما یه مصادر رسیده خوب دقت بکنید میگم این علمای اخباری و مآخذ شواهد بیارن دقت نکردن که اگر این شواهد خوب زور بشه به این مقداری که اینو میخوان میگه نیست کل مجموعه ایشون هفتاد حدیثه بله چرا نقلم شده و موجودم هست الان تو ذهن من هست که به هفتاد نمیرسه موجود و چیزای منفردی هم داره چیزایی انداره که انفراد جای دیگه ما ندود منفرده خود همین آیه حفظ ابن قیاسه که انشالا وقتی دیگه باید برسید بکنم ورکتولو حسین ابن عبدالله از این زهیی فهمی ناریشون شده اسم این چهست بردن این خیلی قابل اعتماد نیست و کتاب ولو لعلی بن حسن تاتوری اینه یعنی من تجربه تاتوری ها چند نفر هم و بیش از یک کتاب دادن. تاتوری ها یکی کنانی حسن نهری علی ابن حسن تاتوریز مثل علی ابن حسن فضا اینا چند نفر و بدون شک مسادرشون مسادر قابل اعتناعی بوده و راجبون ها هتا گفتن که لا یرون الا انسره چون محمد شیخ میگه هم روات هم. شیخ و در کتب هم معفوض رواد الموسوق به یعنی تعییل میکنه شفت اینها و پرس کردن کتب تاتوری ها مثل کتب بنی فضال و دیگران بین دیگر ما موجود بوده اما رو هم رخصه دریشان من نمیدونم اون چه که ما الان از تاتوری ها داریم علی حسن تاتوری در بعض از رواتم علی ابن حسن ها. جرمی با جیم جیم و را و میم جرمی جرمی و تاتوری یکیه جرمی نصبه برشیره هست تاتوری هم نصبه شغلشه تاتوری بزار بزاره لباسه مثل شریع لبزی تترون هم هست لباس های وقعی بود اینا نام تاتوری اینا هره که بزدادی که اینا هزاشته تاتوری بشین گفتن این شغل بوده همه بشین الان آثار تاتوری در میان کتاب های ما کمه منفرد هم داره. یعنی الان ما از همین حلیت نرسن تاتوری روایتی داریم که منفرد کسی دیگه هم نقل من اسمشون برم روایت درباب قبله که قبله الا سماع صابئه که در لعزل از سمائ که اگر اون هاشیار خود رو دیده باشن مرحوم صابور رو عوض در دست به که بعض آریخویی هم قبول کردن در دوره جدیدشون آریخویی قبول نکردن میگم نه این قبول چون راه منخص به, به تاتوری ایشون طریق شیخ و تاتوری قبول نمیدن در هر حال این از منصرزات تاتوری که مثلا آریخویی وقتی قبول داشتن تو حاشیهشون منکر قبول نذاشند برگشتن از زخی که ده تا خندی کردن و فقط قبله هم نیست آثار دیگر اما انصافا آثارشون کمه یعنی آثار تاتوری ها رو اگر ما بخواهیم جدا بکنیم کنیم به نظران چه 50 حدیث 23 خیلی کمه کل آثار تاتوری ها در حدیث ما فوق العاده کمه اونقدر نیست که رو حل مشکلی بکنه اینم مطلب دیگر شن پس این مطالبی که ایشون جمع و جور کردن تیدی به جایی نبید وقت جرا رئیس المحدثین علا متعارف القدما راسته این مخلبیشون که رئیس المحدثین که مراشون شیخ صدوقه جرا علا در قوم کاش این کلمه نه در بغداد در بغداد نیست فحکم به سهت جمعی احادیسی راسته منوال جماعتون صحیح بودن هم ارز کردیم در اصطلاح مرموم شیخ صدوق با مجموعه شواهدی که از خود فقیه گرفته میشه و غیر فقیر اینا دیگه دنبال غیر فقیر نرستن نمیشه که ما درده فقط اول عباط فقیر رو من ارز کردن در علال شرایط و غیر صدوق گاغاهی بعض از احادیث رو میاره برمیار حالا حدیثون صحیح تصریح میکنه و اون حدیثی که ایشون روشن صحیح کاملا ضعیفه. یعنی صد در ضعیفه نه اینکه مختصره. کاملا ضعیفه. من جمله مثال ارض کردم در کتاب شرایط در سوم ایام و 20. که سیزده و چارزه و کونزه روایت این هم در بداقون ابی رسول الله فا آدم این سروز روزه گیره بروی سکید شد روز سیزده هم و از محنو السلام می آرادا حدیثاً صحیح این صحیح ظاهرن شان بیاد توجیح بازارین فیر صحیح ظاهرن به لحاظ مغموم باشه به لحاظ شواهد قرآنی نداره که روی آدم سیاه شده باشه اصلا آدم رب و اون فکر میشه به شواهد میگه سیاه شدن رو نداره که که سه روز روزه گرفت رویشون سفیز شد مثلا این شیار که مزمون لطیقی سه حد سند، سه حد حدیست. دقیقاً به لحاظ مضمونیست. ولی هیچ راه دیگه ما برای توجیم کلام و صدوق نداریم. یا ها حدیث و تقییم. پس و برای این محوم صاحب و, سا... و, سا... و سا... که داره برای نگاهشون فقط به اول عبارت فقیح بوده. نه باید مجموعه عباراتیشان بگیره. اینی که ایشون نوشت رئیس و این چرا؟ من به طور خلاصه چه بکنم انصاف قضیه در زمان صدو چون ما از کردیم این دائما این... چون زیاد فتم ه انشاءلله حفظتن شده باشه از سالهای هشتاد تا صد و تولید علم در شیعه است از زمان امام سجاد فرانه شروع میشه اوجش امام صادق هم باقر تا سد و از و چون بغداد تأسیس میشه مقدار زیادی هایی و در کوفه هم هست مقدار کمی در بسه است مقدار خیلی کمی در مدینه یا چکو توی کنه اگه تو قم یا خراسان باشه یا مثلا آذربایجان سند دارید خیلی کنه حدود 90 درصد میراث های ما در طف است از 80 تا 150 از 150 تا حدود 300 مکتب اول بغداد است که اکثر این مکتب امتیاز داشته که مکتب خوبیه هم ترویج علم داره خدمت علم متأثر از ایران هم به اصطلاح متوازن یعنی موزون حرکت علمیشون هم حدیث قبول میکنن هم شواهد و اوقلاعی رو دارن هم مقایسه میکنن هم متون رو بررسی میکنن که اعلام این مکتب از خیلی مثل اعلام مکتب اول رو هم بگیم مثل زره و محمد بن اسلم و برن اصحاب اجمال مولانا اعلام مکتب اول بغداد امثال ابن عربی عمه و یونس بن عبدالرحمن بزنکی و اینا صفوان و البته بعدشون بودن حالا ما مکتب بغداد به این من. منظورم مکتب نه مکان صحنا از سال دویست تقریبا قوم شروع میکنه تا حدود چهار قوم یک مکتب بیشتر نداره. مکتب قوم به طور کلی طبیعتش این بوده چون منذبی هم بوده کنار هم بوده کنار ری بوده که سنی بودن و منزوی بوده مثل بغداد آزادی فکری هم درش نبوده بیشتر در مکتب قوم قرائم اونجا بررسی کردن اونجا نقدی کردن. چیگه هم کردن؟ لیکن اجمالا مخصوصا توسط صدور پدر و رو بیشتر روی قرائن طائفه حساب کردن و قرائن شیعه از, از در مکتب اول بغداد هم همینطوره رو قرائن شیعه زیاد حساب شده روی احادیس و یه مقداری هم از مکتب اول بغداد میره به خوب یعنی قومی ها یه مقداری م... مقدار زیادی از مکتب اول بغداد فقط کوفه نیست درست کن؟ از سال 320 که تقریبا همزمان با آمدن کلینی به بغداده مختب دوام بغداد شکل میگه تا 450 تنجام با خروج شیف از بغداد در این مکتب دوام بغداد چون بغداد دیگه شهر بزرگی شده اهل سندن در دوستان شیعه تقریبا سر کار بودن این هر تحویر حالا رسمن حکومت شیعه نبود سر دستگار به حول خروجی خلافت عباسی بود همه خب آله بوایی مسلح بود حالا از با سال محمد میخورد هزار سال قبل هزار سال قبل وارد بغداد شدن سال سی و سی و چار. الان هزار و و سی و هستیم درست هزار و سال قبل وارد بغداد شدند. و از وقت ورود اونا به بغداد یعنی سد و تا چه و پنجاه حساب بکنن حدود 100 تقریبا و سی, و چار چار و و سی سال کمتر این مقدار اوج مکتب بغداد مکتب بغداد طرایق شیعی داره اعتمادش رو مکتب قم خیلی زیاد نیست، لكن مکتب بغداد خیلی سعی می‌کنه اتجاه یعنی مثل مرحوم شیخ توسی یا اتجاه عام اسلامی رو هم قبول رو کنه. مثل حجز خبر و اجماع و اجماع رو مثلا سید مرتضی خیلی مطرح می‌کنه. شیخ خبر رو مطرح میکنه. مکتب بغداد انصافا مکتب بسیار خوبی بوده. توسعه داشته مبانی رجالی خوب فهرستی کلامی تفسیری این سری معلومات رو ما در مکتب قوم نمی بینیم فقه معارم فقه خیلی یعنی من که بران کردم این تا این لحظهی که من در قدماتون نشستم نور در مجموعه معارفی که ما الان به اسم شیعه داریم به مکتب دوم بغداد برمی مجموعه معارفی که داریم و مقدارش از مکتب اولی مقدارشم از مکتب خود حالا روشن شد رو این مطلب بود تا زمان هلا علامه. علامه که این تخریب و شروع کرد اگر ما بخویم مثلا چون علامه می‌ذینه که سلطان مغول سلطان محمد خداونده شیعه شو تو سلسله ایشان شیعه قدرت سیاسی پیدا کرد زمان محقق نه زمان شد خب بعدم علامه در کیرت ذعوه های سنی شیعه اصلا با ابن تیمیه، علامه طرف مقابل با ابن تیمیه است یعنی بزرگترین عللهان بزرگترین مردی که دفاع از اهل سلفی ها وهابیا میکنه ابن تیمیه است از اون بزرگتر نداری یعنی علامه در مقابل بزرگترین دشمن شیعه قرار میگیره که چون علامه معروف به ابن امان اون حدیثی با شما ابن امان نجاست ابن تیمیه میکنه از علامه به که مکه بر هم میرسه خیلی شخصیت علامه تجزیه میشه واسه می تو چی از می من همونجوری میگه نمونه استش من نمی منم قاعده علامه باز در یک موضعی باز اسلامی قرار میگیره این تسیح خبر به اصطلاح تحلیل جدیدی است. این انواع اربعه و اجماع و شهرت و این کارهایی که علامه میکنه یک نوع باز تحلیل جدید یک نوع حرکت جدید به چه شیعه معارف چیست لكن اگه دقت بکنیم میتونیم بگیم بیشتر رفتار روی یعنی با ملاحظه جهات به اصطلاح اسلامی با جد خبر عدل و اجماعی که اونا گفتند این چیزهایی که میخوره بون تفکر اسلامه این قرن هشتون علامه تا اخباری ها و دولت سفرمیه دولت سفرمیه به اصل زمان علامه شیعه که نبودن هیچی شیعه که بودن هیچی با عثمانی ها مانطقه جنگ میکردن با سودی ها جنگ و, و جدال و کشت و کشت قرار بود ملم های اخباری ما که در زمان صفبیه بروز کردن اینا هم دست به تحلیل دادن دقیقا این صورت تحلیل ها این تحلیل هایی که در مراحل تاریکی معارف ما لیکن در این تحلیل که الان خوندم براتون از شهر بهایی و مجلسی و دیگران در این تحلیل باز رفتن طریقه گمه ها یعنی در این تحلیلشون رفتن روی شواهد طائفه <تصفيق> اینه که من دادم براتون عباس میکنم این نتیجه گیلی شما الان بگم که آخر گالایی روز اینا باز رفتن رو شواهد طاعته یعنی باز دو مرتبه همون طریقه بومیها در حقیقت بیشتر احیا شد نه طریقه, طریقه بغدادی ها میانه بود طریقه علامه تند بود اینا ضد طریقه علامه قرار گرفتند و به نتیجه چون اجتماعی هم همینطور بود دیگه صفحهیه در مقابل عثمانی هم نبود، ارتماس نبود. اون با همگی مشکل جنگ وجدان میشن این نتیجهش این شد که باز اینها رفتن رو شواهد طائفه دقت کردیم باز دو مرتبه این تحلیل رو بعد از علامه سیری سال بعد از علامه باز تحلیل شروع شد و باز واقعا هم زحمت کشیدن دیگه لکن بیشتر رفتن رو تایید مذهب اول کوفه و مذهب کوفه و باز مکتب قم روی شواهد طائفه بیشتر تاکید کردن نه روی شواهد اسلام در زمان ما کلان صحبت ها هست دیگه سه تا شواهد الان مثلا هم شواهد طائفه مثلا هم شواهد اسلامی بخوازم اینکه زمان ما جوری شده که باز شده و مخصوصاً در مقابل رهابیا و سایتایی که دارن دیدا. یکی هم شواهد کلی و که قریه ها مطرح کردن یورا شده زمان خودمون خیلی ثابت نمی‌کنی معلوم بشه که کجا هستی و چه کار باید بکنی بعدیرو کلام دارید فعلا دلیل در کلمات صاحب و صاحب در قرم دهم به برد که چطور اصحاب ما باز و مرتبه در این فتره سفویه احیا کردن طریقه همیه ها و شواهد طاقه رو نسال الله على محمد و آله